خودخوا نوشته ریچارد داکینز. فصل ششم سوم به جوجه های کوچک در دسته های خانوادگی غذا داده می شود. همه دنبال مادرشان می روند. جوجه ها دو آوای اصلی دارند علاوه بر جیکچیک بلند و تیزی که قبلا گفتم وقت خوردن صدای کوتاه آهنگداری همسر می دهند. به صدای جیکچیک که برای درخواست کمک از مادر است، جوجه های دیگر توجهی نشان نمی دهن. اما آن صدای آهنگدار کوتاه توجه جوجه های دیگر را جلب می کند. به این معنی که وقتی جوجه غذایی پیدا می کند با صدایی که در آورد توجه جوجه های دیگر را هم به غذا جلب می کند. بنا به, به مثال فرضی قبل این صدای آهنگدار آوای است. مثل آن مورد قبل، این ایسارگری آشکار جوجه را با آسانی میتوان با استفاده از انتخاب خیشاوند توضیح داد از آنجا که در طبیعت همه جوجه ها برادری خواهر تنی هستند ژنی که مربوط به آوای قضا در صورتی منتشر می شود که هزینه آن آوای جوجه کمتر از نصف سود خالصی باشد که به جوجه های دیگر میرسد چون همه این سود بین گروه جوجه ها که معمولا تعدادشان بیش از دوتاست، تاست پخش می شود. صبر تحقق یافتن این اهم امر مشکل نیست البته این قاعده در مورد جانوران اهلی یا حیوانات مزرعه وقتی که مرغ مجبور می شود روی تخمهایی که مال خودش نیست حتی روی تخم بوقلمون یا اردک بنشیند درست عذاب در نمیآید اما نه از مرغ و نه از جوجه هایش می شود انتظار داشت که این را تشخیص دهند رفتار آنها تحت شرایطی که به طور معمول در طبیعت حاکم است شکل گرفته و در طبیعت معمولا غریبه در لانه کسی پیدا نمیشود شود. به هر حال اشتباهاتی از این دست گاهی در طبیعت رخ می دهد. در گونه هایی که به صورت گلب و دسته زندگی می کنند، یک ماده غریبه ممکن است بچه یتیم را بزرگ کند. به احتمال زیاد ماده که فرزند خود را از دست داده دست به چنین کاری می زند. کسانی که را تحت نظر دارند، از واژه خاله برای چنین ماده استفاده می کنن. در اکثر مواقع، گواهی داله بر اینکه او واقعا خالی یا در اصل یک خیشاوند نزدیک باشد وجود ندارد. اگر آنها که میمون ها زیر نظر میگیرند بیشتر آگاه بودند، واژه مهمی مثل خاله را اینطور راحت به کار نمی بردن. در بیشتر موارد احتمالا استفاده از قبول خانده بهتر است. گرچه ممکن است ناراحت کننده باشد ولی این کار در واقع نقیض یک قاعده ذاتی است. زیرا آن ماده مهربان با مراقبت از آن بچه یتیم به ژن خودش سودی نمی رساند. او وقت و انرژی را که می توانست. زندگی خیشان مخصوصا فرزندان آینده خودش کند هدر می دهد. شاید این اشتباهی باشد که به ندرت رخ می دهد و به همین دلیل انتخاب طبیعی زحمت این را به خود نمی دهد که آن را تغییر دهد. به این صورت که غریزه مادری را گذینشی تر به کار بیندازد. البته در بیشتر موارد یک چرن فرزندخانگی صورت نمی گیرد و یتیم به حال خود رها می شود تا بمیرد موردی از یک اشتباه بسیار افرادی وجود دارد که آدم ترجیح می دهد اصلا آن را اشتباه به حساب نیاورد بلکه به عنوان دلیلی در مخالفت با نظریه ژن خودخواه در نظر بگیرد آن مورد میمون مادر داغداری است که دیده شده بچه ای را از ماده دیگری میدزدند و از آن مراقبت می کنند از نظر من این یک اشتباه مضاعف است چون آنکه فرزند خوانده پذیرفته نه تنها وقت خود را هدر میدهد بلکه یک ماده رقیب خود را از زحمت نگهداری فرزند رها کرده و این اجازه را به او میدهد که بهزودی بچه دیگری داشته باشد از نظر من این مورد مسئله دار و ارزش دارد که بررسی کلی در موردش انجام شود لازم است بدانید چنین اتفاقی هر از گاهی صورت می گیرد. و میزان متوسط خویشاوندی بین آن که فرزند خانده پذیرفته و آن بچه احتمالاً چقدر است؟ و مادر واقعی بچه به این قضیه چگونه برخورد میکند؟ بالاخره به نفع اوز که کسی از بچهش نگهداری کند و آیا مادرها سعی میکنند امدن با گل زدن ماده های جوان بی تجربه آنها را به نگهداری فرزند خود وادارند؟ نظر داده هم که آنها پرزند قبول می کنند و همچنین بچه دوست ممکن است از کارآموزی با ارزشی که در کس به هنر بچه داری می کنند سود ببرند. فاخته ها و دیگر تقم گذاران انگلی پرنده که که تخم خدا در لانه پرندگان دیگر می گذارند نمونه ای از نقض غریزه مادری به صورت عمدی هستند. فاخته ها از این قاعده که با هر پرنده کوچکی که در لانهی که تو ساخته جا گرفته است مهربان باش به نفع خود استفاده می کنند فاخته ها را کنار بگذاریم به طور عادی نتیجه خوشایند این قاده محدود کردن ایسارگری به خویشاوندان نزدیک است. زیرا در واقع لانه ها چنان دور از هم قرار گرفتند که در لانه هر کس تقریبا فقط جوجه های خودش قرار دارد کاکایی های بالغ تخم های خود را باز نمی شناسند. و بی خیال روی تخم کاکایی های دیگر و حتی روی چیزهای بدلی زمختی که ممکن است یک انسان آزمایش کرد به جای تخم بگذارد مینشینند. در طبیعت برای کاکایی شناختن تخم خود اصلا مهم نیست. زیرا اینطور نیست که تخم‌ها ها قل بخورند و چند کیلومتر آن طرفتر وارد محدوده لانه همسایه شوند. اما آنها جوجاهای خود را تشخیص می دهند. جوجه بر خلاف یک جانه می ماند و براحتی می تواند سر از نزدیکی لانه یک همسایه بالغ در آورد و همانطور که در فصل یکم دیدیم اغلب عاقبتی ناگوبار دارد. از طرف دیگر گیمو پرندهی در قد به شما های خود را رو از روی نقش خال آنها میشناسد و برای خوابیدن روی توخما به نفع خود عمل میکند. شاید به این دلیل باشد که لانه آنها روی سنگ صاف است و در آنجا خطر قلق خوردن و قاطی شدن تخم ها با هم وجود دارد اما شاید بشود پرسید چرا آنها این زحمت را به خود دهند که تخم به خود را بشناسند و فقط روی همان بنشینند یقیناً اگر هر پرنده‌ای روی می بنشیند دیگر مهم نیست که فلان پرنده روی تخم خود یا تخم پرنده دیگر نشسته باشد کسی که به انتخاب گروه معتقد است چنین بحثی را مطرح کنند. ولی فقط ببینید چه می شود اگر یک چنین حلقهی که برای مراقبت از بچه هاست پیدا کند. متوسط تعداد تخم هر کیمو یکیست. این یعنی اگر قرار باشد حلقه مشترک مراقبت از بچه خوب پیش برود هر پرنده بالغ باید به طور متوسط روی یک تخم بنشیند. حالا فرض کنید یکی تقلب کند و نخواهد روی تخم بنشیند. به جای هدر دادن وقت برای نشستن روی تخم، در فکر گذاشتن تخم‌های دیگری باشد و زیبایی این نقشه در این است که آن بالغ دیگر که ایثارگرتر است به جای او از تخم‌ها مراقبت می کند آنها با صداقت از قانون اگر یک تخم سرگردان نزدیک لانه ع دیدی، آن را به درون لانه قل بده و روی آن بنشین، پیروی می‌کنند. به این ترتیب ژن تقلب در این نظام در سر تا سر جمعیت پخش می شود و آن شرخی مناسب مراقبت از بچه از هم گسیخته می شود. خب شاید بشود گفت در صورتی که پرندگان صادق نپذیرند، جور دیگران را بکشند و قاطعان تصمیم بگیرند فقط و فقط روی یک تخم بنشینند چه خواهد شد. این کارشان دست متقلبها را رو زیرا می میبینند زیر می که تخمشان روی سنگا رها شده بدون اینکه کسی روی آنها نشسته باشد. این کار زود آنها را سر راه کند متأسفانه چنین نیست از آنجا که ما این فرض را مسلم گرفتیم که آنهایی که روی تخم مینشینند تخم را هم تشخیص نمیدهند. اگر پرندگان درست کار برای مقاومت در مقابل متقلبها نقشه خود را عملی کنند. تخمی که در نهایت مرده بی‌توجهی قرار میگیرد. همونقدر ممکن است تخم خودشون باشد که تخم یکی از متقلب ها. هم به نفع متقلب چون آنها تخمهای بیشتری میگذارند و بچه های بیشتری از آنها به زندگی ادامه می دهن. تنها رایی که یک گیموی درست کار برای مغلوب کردن متقلب دارد این است که عملا به نفع تخمهای خودش تبعیض قائل شود. یعنی از ایسارگری دست بردارد و در فکر منافع خودش باشد. به قول مینارد سمیت راهبرد ایثارگرانه قبول فرزند از نظر تکاملی باثبات نیست. از این نظر باثبات نیست که راهبرد یک رقیب خودخواه که بیش از سهم منصفانه خود تغییر میگذارد و از شستن روی آن امتناع می کند از او جلو خواهد زد. این راهبرد خودخوانی دوبار نیست. به نوبه خود ناپایدار است زیرا از راهبرد ایثار ای به نفع خود بهره میگیرد که خودش بی سبات و بنابراین از بین رفتنی است. تنها راهبردی که از نظر تکاملی برای گیم و پایدار باشد این است که تخم خود را تشخیص دهد و فقط روی همان بنشیند و این دقیقا همان چیزی است که صورت میگیرد. گونه پرنده های آوازخان که فاخته سر بار آنها می شود با با آنها مبارزه کردهاند. در این مورد نه با دانستن شکل ظاهری تخم ها بلکه با تشخیص قریی تخم هایی که علائم خاص مربوط به گونه شان را دارند از آنجا که این خطر وجود ندارد که اعضای گروه خودی به صورت توفیلی مزاحم شود این شیوه موثر است. از آن طرف فاخته ها هم تلافی می کنند به این صورت که تخم هایشان را از نظر رنگ اندازه و نقش هرچه بیشتر شبیه به تخم میزبان می کنند. این موردی از تقلب است و اغلب نتیجه می دهد. حاصل این نوع مسابقه تسلیحاتی در تکامل پیشروی چشمگیر تخم فاخته ها در تقلید است. می شود فرض کرد تعدادی از تخم فاخته را پیدا می کنند و آنهایی که پیدا نشده اند، یعنی دستشان رو نشده به زندگی ادامه می دهند تا تخم نسل بعد فاخته را بگذارند. به این ترتیب ژن هیلگری بیشتر در سراسر خزانه ژنی فاخته ها منتشر می شود و همین ترتیب پرندگانی که با چشم تیزبین خود کوچکترین تفاوت و تقلب را در تخم فاخته ها تشخیص دهند بیشتر به خزانه ژنی خود کمک می کنند بنابراین چشم دقیق و تیز نیست به نسل بعد منتقل می شود این مثال خوبی است از اینکه چگونه انتخاب طبیعی به تشخیص دقیق میدان می دهد در این مورد تشخیص دادن اعضای یک گونه دیگر است که با حد اکثر سعی خود میخواهند تشخیص دهنده را به اشتباه بیاندازند حالا برگردیم به مقایسه براوردی که یک حیوان از روابط خویشاوندی خود با دیگر اعضای گروهش دارد با براورد مربوطه از نظر یک طبیعت شناس متخصص در کار میدانی برایان برترام سالها سر مطالعه زیستشناختی شیرها در پارک ملی سرنگتی کرده است بر مبنای دانستهایش از رفتار آنها در تولید مثل وی در یک گله شیر، میزان متوسط خویشاوندی شیرهای آن گله را برآورد کرده است. او از واقعیت‌های زیر برای این حدس خود استفاده کرده است: یک گله نوعی از هفت شیر ماده بالغ که اعضای ثابتتر گروه هم و دو شیر نر بالغ که سیارترن تشکیل شود. حدود نیمی از شیرهای ماده بالغ همزمان با هم زایمان می و طوله ها را پرورش می طوری که براحتی نمی توان کدام طوله به کدام مادر تعلق دارد. به طور عادی تعداد طوله هایی که در یک شکم زایده می شوند ست هست. پدری این طوله ها بین آن دو شیر نر به طور مساوی تقسیم می مادههای جوان در گله می مانند و جایگزین ماده هایی که از آنجا رفته. یا مرده اند نرهای جوان وقتی به بلوغ می رسند از گروه رانده می شوند. وقتی بزرگ شدند به صورت دسته کوچک دوتایی به گله دیگری سر می و بعید از به خانواده اصلی برگردند با استفاده از اینها و فرضهای دیگر می بینید می شود رقم میانگینی را برای میزان خیشاوندی دو شیر در یک گله نوعی شیر به دست آورد برترام این رقم را برای دو شیر نر که اتفاقی برگزیده شوند 22 درصد و برای یک جفت ماده 15 درصد پیدا کرد. یعنی نرهای درون یک گله در مجموع فاصلهشان کمی بیشتر از برادرهای ناتنی است و ماده ها کمی از نسل اول عموزاده به هم نزدیکترند. البته ممکن است دو شیر خاص برادر تنی هم باشند. اما برترام راهی برای پی بردن به این موضوع نداشت و منصفان است که شیرها هم نداشته باشند از طرفی این ارقام تقریبی که براورد برترام است به مفهومی در اختیار خود شیرها نیز هست اگر واقعا این اعداد خاص یک گله شیر معمولی باشند آنگاه هر که در نرها این رغبت را ایجاد کند که نسبت به نر دیگر رفتاری نزدیک به رفتار با یک برادر ناتنی داشته باشند از نظر بقا ارزش مثبتی خواهد داشت و هر جنی که زیاد روی کرده و نرها را وا دارد که رفتاری سمیمانه مانند برادرهای تنی داشته باشند در مجموع تنبیه می شود. چنان که ژن به اندازی کافی سمیمی نبودند، مثلا ژن رفتار با نرهای دیگر مثل اموزادهای نسل دوم به سزای خود می رسن. اگر واقعیت زندگی شیرها چنین باشد که برترام میگوید و به همین اندازه مهم که اگر آنها نسدهای متعددی چنین اند پس ما میتوانیم این انتظار را داشته باشیم که انتخاب طبیعی به درجاتی از ایسارگری ارجهیت میدهد که متناسب با میزان خویشاوندی در گله است در نهایت وقتی میگوییم برآوردن میزان رابطه ی خویشاوندی در نظر آن حیوان و از نظر یک طبیعت شناس تقریبا یکی است منظورم همین است. بنابراین نتیجه میگیریم که ممکن است در تکامل ایسارگری اهمیت خیشاوندی واقعی کمتر از بهترین برآوردی باشد که حیوان به آن می رسد. شاید این واقعیت کلید حل این معما باشد که چرا در طبیعت مراقبت های والدین اینقدر پربسامدتر از ایسارگری خواهر یا برادر است. همچنین چرا حیوانت برای خودشان بیشتر از قائل می شوند تا حتی برای چند برادر؟ خلاصه کلام این است که علاوه بر شاخصهای خیشاوندی ما باید چیزهایی مانند شاخص قطعیت را نیز لحاظ کنیم. اگرچه از لحاظ جنی رابطه والدین یا بچه با رابطه خواهر یا برادر نزدیکتر نیست ولی قطعیت بیشتری دارد. به طور عادی شما با قطعیت بیشتری میدانید چه کسانی فرزندانتان هستم ولی در مورد خواهر و برادر خود این اندازه مطمئن نیستید و در مورد خودتان که چه کسی هستید بیشتر از همه اطمینان دارید ما ها را در میان گیموها دیدیم و در فرضهای بعد چیزهای بیشتری درباره دروغگوها و سوءه کنها خواهیم گفت در دنیایی که دیگران مدام گوش به زنگ فرصتی هم تا از ایسارگری در روابط خیشاوندی به نفع خود استفاده کنند وانا در جهت اهداف خود به کار ببرند هر ماشین بقا مجبور است ببیند به چه کسی میتواند اعتماد کند و از چه کسی میتواند واقعا مطمئن باشد اگر به واقعا برادر کوچک من است من باید نصف آن اندازه‌ای که از خودم مراقبت میکنم به او توجه کنم یا برابر با مراقبتی که از فرزند کوچک خود دارم و او رسیدگی کنم ولی آیا آنقدر که از بچه‌ی خودم مطمئن هستم میتوانم از او مطمئن باشم از کجا بدانم که حتما برادر من است اگر سی همزاد دو من باشد آنگاه من دو برابر بچه های خود باید از او مراقبت کنم در واقع نباید اهمیت زندگی او برای من از اهمیتی که به زندگی خود میدهم کمتر باشد ولی آیا کاملا میتوانم از او مطمئن باشم؟ او شبیه من از شک نیست اما شاید ما فقط در جنهایی که برای ویژگی های شریک باشیم خیر من زندگی خود را به پای او نمیریزم زیرا گرچه ممکن است ما صد در صد جنها مشترک باشد ولی من در مورد خودم با قطعیت میدارم که 100 درصد ژنهایم را دارم بنابر ارزش خودم برای من بیشتر از ارزشی است که او برایم دارد من تنها فردی هستم که تک تک ژنهای خودخواه من میتواند از آن مطمئن باشد و اگرچه به صورت آرمانی میتوان هر ژن خودخواهی فرد را با ژن رقیبی جایگزین نمود که برای نجات ایثارگرانه حداقل یک دو قلوی همسان دو بچه یا دو برادر یا حداقل چهار نوه است اما ژن خودخواهی امتیاز بارز کسب اطمینان از هویت فرد را دارد ژن رقیبی که مربوط به ایسارگری به خویشاوند است در معرض این است که در تشخیص هویت اشتباه کند چه بر اثر حادثها مادرزادی چه با دستکاری عمدی کلاهبرداران و انگلها بنابراین ما باید از افراد در طبیعت انتظار خودخواهی را داشته باشیم تا حدی بیش از آن اندازه که تنها با در نظر گرفتن خیشاوندی ژنی قابل پیشبینی است در بسیاری از گونه ها هر مادر بیش از هر پدر میتواند از خوبیت بچه خود مطمئن باشد مادر تقمی میگذارد که قابل مشاهده و لمس شدنی است یا بچه را در درون خود حمل می کند او با اطمینان می داند که حمل کننده ژنهایش کیست پدر خیلی بیشتر ممکن است گول بخورد بنابراین انتظار می رود که پدرها برای نگهداری از پرورش بچه مایه کمتری بگذارند بعدا در فست نبرد دو جنس فصل نهم برای این انتظار به دلایل دیگر توجه می کنی. به همین ترتیب مادر بزرگ مادری یقین بیشتری میتواند به نوشت داشته باشد تا مادر بزرگ پدری و شاید به همین علت باشد که از مادر بزرگ مادری توقع ایسارگری بیشتری داریم تا از مادر بزرگ پدری. دلیل این است که او اطمینان بیشتری از بچه دخترش دارد اما احتمال دارد از سر پسرش کلاه گذاشته باشند. پدر بزرگ مادری درست همان اندازه از نوشت مطمئن است که مادر بزرگ پدری مطمئن است. چون؟ هر دو از یک نسل اطمینان دارند و از یکی نامطمئن هستند و همین ترتیب دایی بیشتر از امو به رفاه بچه اهمیت میدهد و در کل از نظر ایثارگری مانند خاله است در واقع در جامعه ای که در آن خیانت در ازدواج نسبت بالایی دارد دایی ها باید ایثارگرتر از پدر باشند چون زمینه مطمئنی برای داشتن نسبت با آن بچه دارند آنها این را می که مادر از بچه دست کم خواهر ناتنیشان است. کسی که طبق قانون پدر به حساب میآید از هیچ چیز مطمئن نیست. من مدرکی ندارم که گواه این بینی ها باشد. اما آنها را بیان می‌کنم. به این امید که شاید دیگران شواهدی داشته باشند یا در پی یافتن آن برایند. به ویژه شاید مردم شناسان اجتماعی چیزهای جالبی برای گفتن داشته باشند. باز می به این واقعیت که ایسارگری از سوی والدین معمول از ایسارگری از سوی برادر است. و معقول به نظر نمی رستن. لزومی داشته باشد این قضیه را به مشکل شناسایی ربط دهیم. اما این نمی تواند توضیح عدم تقارن بنیادی نی باشد در رابطه والد و فرزند. والدین بیشتر در مراقبت از فرزندان تلاش می کنند تا فرزندان در مراقبت از والدین. گرچه رابطه ژنی آنها متقارن است و اطمینان از خیشاوندی از هر دو سو زیاد است یک دلیل این است که والدین عملا در وضعیت بهتری برای کمک هستند بزرگترند و در امور زندگی مهارت بیشتری دارند حتی اگر بچه کوچکی بخواهد به پدر یا مادرش غذا بدهد در عمل امکانات لازم برای این کار را ندارد عدم تقارن دیگری در رابطه والدین فرزند وجود دارد که آن را در رابطه برادر برادرخواهر نمیبینیم فرزندان همیشه کوچکتر از والدینشان هستند این اغلب نه همیشه به این معنی است که امید به زندگی در آنها بیشتر است همانطور که قبلا تأکید کردم امید به زندگی متخیر مهم نیست که در بهترین وضعیت ممکن وقتی حیوان میخواهد تصمیم بگیرد رفتاری ایسارگرانه داشته باشد یا خیر باید آن را در محاسبات خود لحاظ کند در ای که در آن فرزندان به طور متوسط امید به زندگی بیشتری از پدر و مادر خود دارند و آل شدن ژن ایسارگری در فرزند کار بیسمری است این ژن ایسارگری در والدین در صورتی که در این معادلات امید به زندگی را وارد کرده باشین دارای امتیاز است گاهی می شنبیم گفتند انتخاب خیشاوند به عنوان یک نظریه مشکلی ندارد اما نمونه کارکرد واقعی آن کم است فقط کسی می تواند چنین ارادی بگیرد که معنی انتخاب خیشاوند را متوجه نشده باشد در حقیقت همه موارد حمایت از فرزند و مراقبت های والدین و همه اعضای بدن که به این قضیه مربوط میشوند قدرت ترشح شیر کیسه کانگرو و غیره حاکی از کارکرد واقعی اصل انتخاب خیشاوند در طبیعت هند. البته این منتقدان از فراوانی وجود های ویژه والدین آگاهی دارند اما در درک اینکه های والدین هم موردی از انتخاب خویشاوند است مشکل دارند وقتی میگویند لازم است نمونه های بیشتری ارائه شود منظور آنها مواردی غیر از مراقبت والدین است که البته چنین مواردی رایج نیست من دلایلی برای آن ارائه کردم می توانستم راه را کش کرده و از ایسارگری برادر و خواهر مثالهای نقل کنم که در واقع اندک است. اما چنین کاری نمی کنم زیرا باعث تأیید بیشتر این نظر نادرست که دید مرتوجب ویلسون بود می شود که انتخاب خیشاوند اختصاص به رابطه های غیر از رابطه والدین و فرزند دارد. دلیل یافتن این نظر نادرست تا حد زیادی تاریخی است. امتیازی که مراقبت والدین از نظر تکامل دارد به قطعی آشکار است کلزومی نت صبر کنیم تا همیلتون آن را بیان کند از زمان داروین این موضوع را می‌دانستند وقتی همیلتون معادله ژنی روابط دیگر و اهمیت آنها از نظر تکامل را به نمایش گذاشت طبیعتا مجبور بود روی این روابط دیگر تکیه کند در عمل او نمونه‌هایی از حشرات اجتماعی مثل مورچه و زنبور را مطرح کرد که در آنها رابطه خواهرخواهر خواهد به بیجه بسیار مهم است چون که در یکی از فازهای بعد خواهیم دید از بعضی ها شنیدم که فکر میکردند نظریه همیلتون فقط در مورد حشرات اجتماعی کاربرد دارد اگر کسی نخواهد مراقبت های والدین را به عنوان موردی از انتخاب خیشاوند بپذیرد دیگر این بهته خودش است که یک نظریه کلی برای انتخاب طبیعی صورت کند که بتواند ایسارگری والدین را پیش بینی کند اما ایسارگری بین خیشان غیر سلوی را پیش بینی نکند بگو نمم بعید است موفق شود